همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تراغ گذری بر مقام ما افتد حباب وار بر از نشات کلا اگر زرویت و عکسی به جام ما افتد شبی که ماه مراد از افق شود تالع بود که پرتوه نوری به بام ما افتد به بارگاه تو چون باد را نباشد بار که اتفاق مجال سلام ما افتد به بارگاه تو چون باد را نباشد بار که اتفاق مجال سلام ما افتد چون جان فدای لبشت خیال می چقطر ریز ز به کام ما افتد خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام ما افتد بنا امیدی از این در مرو بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد ز خاک کوی تو هرگه که دم حافظ نسیم گلشن جان در مشام ما افتد